تاب های مردم اسکاتلند نویسنده دونالد آ مکینز ترجمه سارا شمس ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانهای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیمه گلزاده داستان شاهزاده سرزمین زیر انباج زمانی که هیچ بادی نمی بزید و سطح دریا مانند شیشه شفاف بود زیبایی زیر موجها به روشنی دیده می شد سرزمینی اونجا بود با درههای سبز، رودها و نهرهای نقره‌ای و گلهای شادابی که هرگز پژمرده نمی‌شدند و سخره های طلایی و نقره‌ای و شنهای پوشیده از گردهای نقره در یک صبح آروم ماهی که اسمش فینها بود و از جنگجویان بزرگ اسکاتلند قدیم بودند کنار ماهی آزادهایی که اسمش کاتاراکت ها بود به آرومی شنا می کردند و قبل از اینکه به سمت آبهای بالای نهر خیز بردارند استراحت می کردند. خورشید به روشنی میدرخشید و دریا یه موج کوچیک هم نداشت. ماهی که اسمش فین ها بود با شگفتی به زیبایی های سرزمین زیر انباج، خیره شده بودند و حرفی نمیزدند. اونها به راستی که مجذوب اون همه زیبایی ها شده بودند. فینها شنهای نقره ای صخره های طلایی و جنگل های درخشان و گلهای های زیبا و نرهای روشنی را رو نگاه می کردند که در ته خود جواهرات درخشانی داشتند. همانطور که مشغول تماشا بودند، آیقی روی دریا پیدا شد که انگار خالی بود اسکار گفت چه کسی به اینجا میاد آیا شاهزاده سرزمین زیر امواجه یه سال یه روز قبل فاین تونسته بود شاهزاده رو از چنگ شاهزاده سیاه نجات بده شاهزاده سیاه جنگجوی بسیار قدرتمندی که قصد داشت پادشاهی رو از پدر شاهزاده خانوم به زور بگیره و شاهزاده خانوم رو به همسری خودش در بیاره. فاین به سمت دریا نگاه کرد و گفت: "نه، شاهزاده خانوم نیست که به اینجا داره میاد. مرد جوونی داخل قایقه." قایق به آرومی کنار ساحل اومد و قایقران از اون فاصله دور سلام کرد. فاین پرسید: کیستی از کجا میای مرد جواب داد قاصدی هستم از سوی شاهزاد خانوم سرزمین زیر انباج او بیمار و به نظر میرسه که به زودی بمیره با شنیدن این خبر فینها به شدت نگران شدند و فاین پرسید پیام شاهزاده خانوم چیه؟ قاصد پاسخ داد و خواسته تا شما رو قولی را که برای کمک به او داده بودید به یاد بیارید. او اکنون نیازمنده کمک شماست. فاین گفت: من هرگز قول خودمو فراموش نمیکنم. حالا هم آمادم تا هر کمکی که میتونم انجام بدم. قاصد با خوشحالی گفت: پس از جرمیت شفا دهنده خواهش کنید که با من بیاد. شاید اون بتونه شاهزاده خانم رو معالجه کنه. فاین به جیرمیت اشاره کرد. مرد جوون از جای خودش بلند شد و کنار ساحل رفت و داخل قایق شد و قایق به سمت جزیره آبی دور دست حرکت کرد. قایق سری جلو رفت تا به یک قاره دریایی رسید که دروازه ورود به شهر زیر انباج بود جیرمیت بهترین عضو گروه فینها بود و پدرش قدرتی به او عطا کرده بود که میتونست زخمها رو درمون کنه و بیماران رو شفا بده او گیاههای دارویی و آبهای حیات بخش رو به خوبی میشناخت و قدرتی داشت که میتونست با لمس بیماران راه معالجی اونها رو پیدا کنه. جرمیت رو از راه غار دریایی به سمت جزیره دور دست بردند. او چیزی رو داخل قار نمیدید چون اونجا خیلی تاریک بود. تنها صدای برخورد امواج را رو روی صخره میشنید. بالاخره تاریکی تمام شد و قایق در ساحل پهلو گرفت و جیرمیت پیاده شد و جلگهای وسیع رو در مقابل خودش دید قایق ران جلو میرفت و جیرمیت به دنبال او اونها رفتند و رفتند و رفتند و سرانجام جیرمیت انبوهی از خزه های قرمز رو دید مقداری از این خزه ها رو چید در مسیر طولانی خودش باز هم توده دیگری از خزه های قرمز رنگ را دید و باز مثل دفعه قبل مقداری از اون خزه ها را چید در ادامه راه برای بار سوم باز مقداری از خزه های قرمزی که دیده بود چید هنوز قایقران پیش میرفت ولی جیرمیت احساس خستگی نمیکرد سرانجام مقابل چشمهاشون یک دژ تلایی پیدا شد. جیرمیت پرسید هم سفر، این دژ متعلق به کیه؟ قایقران جواب داد به پادشاه سرزمین زیر انباش. شاهزاده خانو هم در این دژ بستری هستش. جیرمیت وارد دش شد. در باریان پرید رنگ بدون کلام، آروم و اندوهگین بودند ملکه به سمت اونها اومد به جیرمیت خوش آمد گفت و اونو به اتاق شاهزاده خانم برد جیرمیت کنار شاهزاده خانم زانو زد و دست او را لمس کرد قدرت شفابخش دست او وارد های شاهزاده خانم شد و اون چشمهاشو باز کرد و با دیدن جیرمیت لبخند شیرینی زد. تمام کسایی که در اتاق بودند با لبخند شاهزاده خانوم لبخند زدند. شاهزاده خانوم گفت خیلی خوشحالم که شما رو میبینم اما هنوز این بیماری در بدنم وجود داره و میترسم که بمیرم. بعدم داد متاسفانه. نمیتونم هیچ آبی رو بنوشم. مگر از فنجون پادشاه دشت عجایب جرمید با تمام دانش خودش هرگز راجب این فنجون چیزی نشنیده بود. شازده خانم گفت. زنی دانا و خردمند گفته که اگه سه جرعه از آب این فنجون رو بنوشم شفا پیدا می به علاوه باید همراه آب سه تکه از خزه قرمزی رو که از دشت و چیده شده قورت بدم. خضاهای سلامتی جیرمیت عزیز. همین که شما پیدا کردید اما هیچ مردی نمیتونه اون فنجون موجزگر رو به دست بیاره. جیرمیت گفت به من بگو پادشاه سرزمین دشت اجایب کجاست و قصر اون تا اینجا چقدر فاصله داره. شهازاد خانم گفت خیلی دور نیست. او در سرزمینی در همسایگی ماست که توسط رودخانهای از سرزمین ما جدا شده شما باید به رودخونه برسید اما ممکن نیست بتونید از این رودخونه عبور کنید جیرمیت گفت من اسم شفا بخش را روی شما گذاشتم و تا زمانی که من با فنجون جادویی برگردم زنده خواهید موند جیرمیت از دشن خارج شد درباریان حالا از گفتههای جیرمیت و امید به زنده موندن شاهزاده خانم خوشحال بودند. شاه و ملکه اونو بدرقه کردند. جیرمیت به تنهایی راهی سرزمین دشتعجایب شد. و رفت و رفت تا خونه ای رسید که شاهزاده خانم گفته بود. دنبال جایی گشت تا بتونه از رودخونه عبور کنه. اما متوجه شد که نمیشه از رودخونه گذشت با صدای بلند فریاد زد نه نمیتونم از این رودخونه رد شم شاهزادهخانه خانومم راست گفته بود با گفتن این حرفها ناگهان مردی کوتاقت با پوستی قهوهای سر از رودخونه بیرون آورد و گفت حالا توی دردسر بزرگی افتادی درسته جیرمیت پاسخ داد بله همینطوره شما خردمندانه صحبت میکنید خب جوون به کسی که مشکل تو را حل میکنه چی میدی هرچه او از من بخواد واقعا هرچی بخوام به من میدی اما شما به نظر بیمنت مییآی تو را رو از روی رودخونه عبور میدم اما شما نمیتونید این کار رو بکنید چرا میتونم؟ مرد کتاقد دست هاشو دراز کرد و جیرمیت رو بر شونه خودش گذاشت و روی سطح آب به راه افتاد. امواج آب زیر پای مرد چون سطحی سخت و محکم بودن. اونها از روی آب عبور کردند و به جزیره ی رسیدند که نمور بود. جیرمیت پرسید نام این جزیره چیه؟ جزیره سرمای مرگ، چاهی در این جزیره هست که آب حیات بخش داره. اونها به ساحل مقابل رسیدند و مرد کوتاقت گفت شما به قصر پادشاه دشته عجایب میرید. بله؟ و امیدوارید که فنجون شفا بخش رو به دست بیارید درسته؟ بله، امیدوارم. مرد قبل از اینکه در میون آبها ناپدید بشه گفت بله ممکنه اونا به دست بیارید ولی میدونید که حالا کجاست؟ بله در سرزمین دشته عجایب درسته درسته این سرزمین زیر کوهستانی هست که رودخونهش به دو قسمت تقسیم میشه. مرد این رو گفت و ناپدید شد و جرمیت نتونست سؤالی رو که داشت ازش بپرسه پس به راه افتاد و رفت و رفت و رفت خوشید بالای سرش نبود اما تمام سرزمین مثل روز روشن بود هیچ تاریکی سرزمین زیر کوهستون را نمیپوشوند اونجا نه صابی بود و نه و گویی همیشه روز بود جرمیت بالاخره به یک دژ نقره ای رسید که سخفی از کریستال درخشان داشت و درهاش بسته بود. جنگجویانی از این دش محافظت می کردن. جیرمید در بوغ شاخی خودش یک بار دمید و فریاد زد. در رو باز کنید و اجازه بدید وارد شم. جنگجوی با شمشیر کشیده به سمت او حمله بر شد. جیرمیت سفر خود را جلو برد و جنگجو را کشت. سپس در راهای دشت باز شدند و شاهزاه شد و با خشونت پرسید کیستی و از کجا اومدی؟ من جیرمیت هستم، پسر آنگلوس همیشه جوان. خوش اومدی؟ چرا اطلاع ندادی که قصد ورود به سرزمین ما رو داری تا این مشکل برات پیش نیاد؟ تو؟ بهترین جنگجوی منو کشتی؟ جرئهای از آب فنجان شفاوخش به او بدید شاه دستور داد تا فنجون رو بیارم بعد فنجون رو به جیرمیت داد و گفت این فنجون اثری نداره مگر اونکه در دستهای پسر آنگولوس باشه جیرمیت فنجون رو به لبهای جنگجو نزدیک کرد و چند قطره آب در دهن او ریخت بعد مرد جنگچو بلند شد و تمام اون فنجون رو نوشید حالا مانند قبل قوی و سالم بود چون همه زخمهاش بهبود پیدا کرده بودند جرمیت به پادشاه گفت اینجا آمدم تا فنجون رو از شما بگیرم و با خود ببرم شاه گفت فنجون رو به شما خواهم داد اما به خاطر داشته باش که حالا دیگه این فنجون نمیتونه کسی رو شفا بده چون تمام آب شفا بخشه درون اون رو جنجوی من نوشیده است جیرمیت از این سخن پادشاه در جایب ناراحت شد اما گفت بسیار خوب با این حال من این فنجون رو با خودم میبرم شاه گفت من قایقی برات مهیا میکنم تا تو رو از روی رودخانه سرمایه مرد عبور بده جرمیت گفت ممنونم ولی نیازی به قایق ندارم شاه با لبخندی گفت اما تو به زودی برخواهی گشت شاه این رو گفت چون میدونست جرمیت نمیتونه از رودخونه سرمایه مرگ عبور کنه جرمیت از شاه خداحافظی کرد و به تنهایی را افتاد رفت و رفت تا به رودخونه رسید و منتظر سپید شد فکرش پریشون بود چون حالا فنجون رو در خیار داشت اما فنجونی که خالی بود و باید از رودخونه ای که به نظر غیر ممکن بود. آهی بلند کشید و گفت افسوس کار من تا اینجا بی و بیهوده بود. این فنجون اینطوری مشکلی رو حل نمی کنه و باید با شرم ساری نزد پادشاه دشت اجایب برگردن. همینطور که صحبت میکرد، مرد کوچک قهوه ای از رودخونه خارج شد و گفت جیر میت، باز تو دچار مشکل بزرگی هستی. بله، واقعا همینطوره. اون چرا که میخواستم به دست آوردم، اما صد افسوس که نمیتونم از رودخونه عبور کنم. من تو را از رودخونه رد میکنم. از شما ممنونم. مرد کوتاه قد جرمیت را بر دوش گرفت و از روی رود رودخونه رد شد و به سمت جزیره دور افتاده سرمایه مرگ رفت. جرمیت در حالی که می‌ترسید، پرسید: حالا منو کجا می‌بری؟ تو در آرزوی شفای دختر پادشاهی سرزمین زیر زیرانواج هستی؟ درسته؟ بله، همینطوره. فنجون تو خالیه. پس باید اون رو از چاه آب حیات بخش که در جزیره سرمایه مرگه پر کنی به همین خاطر دارم تو رو به اونجا میبرم اما نباید در اون جزیره از دوش من پایین بیایی و پاد خاک جزیره رو لمس کنه اگر پاد به ساحل جزیره برسه دیگه هرگز نمیتونه اون جزیره در ترک کنی من در جزیره زانو میزنم و تو همانطور که بر دوش من هستی پنجونت رو تاخنه چاه می و آب برای شفای شازاد خانون برمیداری. دارید. جیرمید از شنیدن این حرفا ها خوشحال شد و فهمید که این مرد به راستی یه دوست براشه. اون همونطور که مرد قد گفته بود تونست یه فنجون آب شقابخش به دست بیاره و پیر مرد اون رو به ساحل روبروی رودخونه برد و از او خواست که در مرز سرزمین زیر از لوشش پایین بیاد. مرد گفت حالا خوشحالم که حالا دلت شاده. جیرمیت جواب داد واقعا دلم شاده. قبل از خداحافظی باید پندی به تو بدم. تو چرا این همه به من کمک کردی؟ چون تو؟ آدم خوش قلبی هستی و دوست داری به دیگران کمک کنی. مردمی که به دیگران کمک میکنن همیشه دوستان خوبی پیدا میکنن. من از شما ممنونم. حالا آمادم تا پند شما رو بشنوم. میدونم که دوستی شما واقعی و پایداره. آب شفابخشی که به شازاده میدهی وقتی اثر میکنه که داخل اون سه تکه از خذاهای سرخ بندازی اتفاقا منم اونها رو از دشت خزههای سرخ چیدم بسیار خوب حالا یه پند دیگه وقتی شاهزاده خانم شفا پیدا کرد شاه به تو پیشنهاد پاداش خواهد داد هیچ پاداشی رو نپذیر و از او بخوا اجازه بده تا تو دوباره به خونه خودت برگردی قول میدم پند شما رو به یاد داشته باشم سپس اون دو نفر از هم جدا شدند و جیرمیت رفت و رفت تا به قصر تنهایی پادشاه رسید. وقتی جیرمیت را به اتاق شاهزاده خانم بردند، او به جیرمیت خوشامد گفت و از او تشکر کرد. من به خاطر سلامتی شما این فنجون را آوردم و برای آوردنش حاضر بودم با ارتش بجنگم. اما من می ترسیدم که نکنه شما هرگز بر نگردید؟ جیرمید سه تکه از خزههای قرمزرنگی قرمز رو که پیدا کرده بود داخل فنجون ریخت و به شاهزاده خانم گفت از آب فنجون بنوشه. شاهزاده خانم سه بار هر بار یک تکی از خزه ها رو با آب گرد داد. وقتی؟ آخرین قطره آب و خضه را خرد گفت حالا کاملا حالم خوبه باید جشنی ترتیب بدیم و با هم شادمانی کنیم به این ترتیب شادی و سروری در قصر برپا شد و همه قمو قصه رو فراموش کردند و به رقص و پایکوبی پرداختند هنگامی که جشن شد شاه نزد جیرمیت اومد و با او گفتگو کرد. او به جیرمیت گفت میخوام در مقابل بهبودی دخترم که در نتیجه سعی و تلاش تو به دست اومد ای بهت بدم. هرچقدر طلا و نقره بخوای به تو میدم و میذارم با دخترم ازدواج کنی و وارث تاج و تخت من بشی. جرمیت در پاسخ گفت: اگه با دختر شما ازدواج کنم دیگه نمیتونم به سرزمین خودم برگردم. نه نمیتونی برگردی. مگه به ندرت و برای دیدارهای کوتاه مدت. اما تو در اینجا روزگار خوبی خواهی داشت و همه به وجود تو افتخار خواهند کرد. جرمیت گفت من فقط قایقی میخوام که بتونم دوباره به وطن خودم برگردم. جایی که برام بسیار عزیزه. من دوستهای سرزمینم و مردمم رو که منو دوست دارن دوست دارم. فیلم ماکور رئیس بزرگ سرزنی نرم را هم دوست دارم شا گفت خاصه تو برآورده میشه بعد جیرمیت با تمام درباریان خداویسی کرد و وقتی میخواست از شاهزاد خانم جدا بشه شاهزاده خانم گفت نمیتونم هرگز تو رو فراموش کنم تو منو در حال درد و رنج دیدی و از اون بیماری سخت هم دادیم. من در حال مرگ منو دیدی و دوباره منو به زندگی بازگردوندی وقتی به سرزمین خودت بازگشتی منو فراموش نکن چون من هم ساعتی از عمرم را بدون یاد تو نخواهم گذرون همیشه از تو به خوبی یاد خواهم کرد جرمیت دوباره از دشت گذشت و به جایی رسید که قایقی منتظرش بود. او باز از میون تونل بسیار تاریک و عمیق عبور کرد و از غارهای آبی گذشت و به ساحل جزیره آبی دور دست رسید. تمام دوستاش روی ساحل جمع شده بودند و با شادمانی از او استقبال می کردن. گفت پسر هانگوز مدت زیادی در انتظار تو بودیم. جیر پرسید؟ مگه من چه مدت از اینجا دور بودم؟ چون به نظرش فقط یه روز و یه شب از کشورش دور شده بود. فاین جواب داد هفت سال طولانی است که تو از اینجا رفتی و ما واقعا نگرانت بودیم که نکنه دیگه هرگز نزدمون بر جیرمیت با تعجب گفت هفت سال؟ در سرزمین هایی که دیدم شبی وجود نداشت و سال تغییر نمی کرد. خوشحالم که دوباره به کشورم برگشتم. سپس اونها به خونه فاین رفتند و او جشنی با شکوه به افتخار جیرمیت برپا کرد. به خاطر کسی که تونسته بود فنجون شفابخش رو از سرزمین پادشاه عجایب پس بگیره و با خودش به وطن خودش